أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد الله صل على محمد ول محمد وعجل فرجة وعلى له الطيبين الطاهرين المأسومين الله على أعدائهم در مؤسسه تعلیمات اسلامی هستیم در خدمت حضرت آیت الله استاد اشرفی شارودی و همینطور فضلای کرام از اینکه وقت شریفتون رو در اختیار من قرار دادید سپاس کذارم. بحثی که من میخوام ارائه بدم در باب منبع شناسی کتاب تاریخ یعنی در حقیقت اولا کتابهای تاریخ را شناسایی کنیم بعد ببینیم که ملاک برای حجیت و منبع بودن و مصدر بودن این کتاب ها چیه؟ من ابتدا سخن خودم را با کلامی از ناپل اون شروع می کنم. ناپل اون به یک جمله ای داره میگه نباید بگذاریم که تاریخ را دیگران بنویسند. معنیش اینه که یعنی تاریخ را باید همیشه هواداران حکومت بنویسند. میگه نباید بگذاریم که تاریخ را دیگران بنویسند. کسی حق نذاره تاریخ بنویسه. این دقیقا روش اوموی ها بوده که بن لباس و بن لباس. هارون رشید خبر آوردن براش که یک شخصیتی از اصحاب اممالی مسلم کتابی نوشته در فضائل و تاریخ اهل بیت او به بغداد احزار کرد و کتابش را در جلوی مسجد جامعه آتش زد و خودش رو به دار آویخت گفت هر کسی حق نداره تاریخ بنویسه. تاریخ ممکنه بگید که از نظر لغت یعنی چه در کتاب لسان العرب نوشته تاریخ تعریف الوقت. وقت و زمان را که آدم تعریف میکنه ای میگن تاریخ. تاریخ در اصل تعریف بوده. ار یا یعرخ و تاریخ باز ورخه ورخ ی و توریت هم داریم در ما جمل وسیط اگر نگاه کنید نظریه مجمع علمی قاهره اینه که لغاتی که دو وجه درش جایزه اون اصلیش محموزه مثلا میگیم اکد یا و توکید تاکید وکد ی و توکید هر دو رو ما داریم آزره یو آزر یو و آزر وازره یو رو و موازره هم داریم الان مبنای مجمع علمی قاهره اینه که میگه یال میگه اصل محموزها هستند پس ببینید لذا تاریخ معروفه تاریخ مخفف تعریخه و از نظر لغت که روشن شد این نکته دوم نکته سوم اوقوی اون تاریخ در تعریفش چیه؟ یک علم تاریخ کتاب های زیادی در باب شناسایی تاریخ نوشته شده از معروف ترین این کتاب ها کتاب مال یک عالم سنی بغدادی به نام عثمان شهرزوری ابوالفتح عثمان ابن شهرزوری متوفای 643 صاحب همون کتاب درایت الحدیث مقدمه بله ابن سلاک معروفه ای هموی ها همویه. همون شهرزوریه در فقه هم نظریه داره فقیه بوده دیگه تاریخ میگه خب تعریفای گوناگونی براش شده مثلا فرض میکنیم یکی از تعریفایی که من مختصرش نوشتم جماع و احوال البشر ما یقه و هم و ما یقه و علیهم. تجمیع تمام وقایع بشر چه اونایی که از اونها صادر میشه چه اونایی که بر اونها واقع میشه اینا در حقیقت تاریخ نگاری است ببینید ممکنه بگید که فایده اطلاعه به تاریخ چیه بزرگان ما مثل مرحوماتو لازم آقای بروجردی از تاریخ برای اعتبار احادیث هم استفاده می کرده. یک دانشمندی در قرن هشتم هست ترکه به نام صلاح الدین خلیل ابن آیبک کتابی داره به نام الوافی بل که این کتاب برای اولین بار توسط ریتر یک مستشرق آلمانی چاپ شد. هنوز الان هم انحصار چاپ این کتاب در دست آلمانی هاست. هنوز الان یعنی بعد از حدود هفتاد هشتاد سال انحصار چاپیش اونها داره. این کتاب به نام الوافی بل متوفای مدوفای 764 سلاه الدین خلیل ابن ایبک میگه که تاریخ چه ای داره؟ میگه تاریخ فایدهش اینه که ما خیلی چیزهایی که به دروغ برای ما نقل میشه و ما به, و... به منزله قطعیات حساب میکنیم اگر به تاریخ مراجعه کنیم میفهمیم که آقا خیلی چیزها نه اونجوری که معروفه نیست بعدیشون یک مثال میزنه میگه در قرن پنجم یک مورخی بود در بغداد به نام در قرن پنجم به نام ابوبکر خطیب بغدادی خیلی معروفه. متوفای 463 دقیقاً معاصر شیخ توسی در بغداد بوده. منتها ابوبکر خطیب بغدادی مورخه کتابی داره به نام مدینت السلام یا تاریخ بغداد. هر کسی که وارد بغداد شده یا در بغداد بوده یا به جوری به بغداد ارتباط پیدا کرده، این زندگی نامش رو نوشته. تاریخ بغداد. بعد ایشون در این سفتی میگه یک گروهی بودن یهودی اینها از مناطق خیبر و غیر و اینا هر سال یک نامه می آوردن خدمت خلیفه و می گفتن آقا ما معفویم از نظر خراج دادن چرا چون متن این نامه این بود که این نامه را پیغمبر اکرم دستور داده بود به اینها که اینا خراج لازم نیست بدن متنش اتفاقا مثلا کسانی هم امضا کرده بودن از صحابه مثل مابیه دیگه. این نامه را خلیفه گفت که آقا یک بد چیزی اینا چار قرن پنج قرن شده الان از در درمرن که ما یک نامه داریم از رسول خدا به ابو بکر خطیب بغدادی داد. گفت برو این نامه را ببین واقعا یک نمیشه یک جوری ای بررسی کنیم. خطیب بغدادی چون مورخ بود. گفت واقع اینایی که این نامه رو امضا کردن در زمانی که این نامه نوشته شده اصلا در دنیا نبودن نبودن اینا جز صحابه پیغمبر نبودن این دلیل بر اینه که این نامه نگاه کنید میگه بعد از پنج قرن نامهی که به اسم پیامبر صحابه پیامبر بود وقت راج خیبر را اینا از زیرش در میرفتن ابوبکر خطیب بغدادی کشف کرد با تاریخ شناسی با تاریخ شناسی من یک گزارشی از کتاب‌های تاریخی ابتدا علمای اهل سنت را بگم بعد علمای شیعه ضمن اینکه ضمن اینکه نکته چهارم تاریخ چند جوره یعنی مثلا ما تاریخ ایران که داریم، تاریخ اسلام که داریم چند جوره، تاریخ جهان که داریم چند جوره؟ یک امومیه آقا همه چیز رو می نویسم کسی که درباره ایران تاریخ می نویسه، همه چیز رو می نویسه. درباره اسلام نوشته، همه چیز رو نوشته. اینو میگن تاریخ عمومی، عمومیه. یک تاریخ داریم، تاریخ اشخاص خاصه. مثلا ببینید ما دان کتاب داریم با عنوان کتابهایی در باب صحابه سه تا کتاب معروفه اولیش الاسطیعاب عبدالبر اندلوسیس متوفای سی سد شست و ترجمه تمام صحابه را آورده الاسطیعاب همین صاحب الاسطیعابه که اولین بار در مقدمه این کتاب ادعا میکنه که علمای اهل سنت اجماع دارند بر اینکه که صحابه همهشون اینجای قاعده تولد پیدا کرده ها قبل از نیست. مثلا کسی دیگه که باز در این بابه کتابی داره محمد ابن اثیر جزری و وفای 636 کتابی داره به نام استلغابه استلغابه است اص جمع اسد جمع مکسر گایب تغییر حرکت ها حرکت یعنی اسد است میشه این جمع مکسر میشه گویم تغییر اندرونیه مثل فلک و فلک هم مفرد هم جمعه میگنی تغییر اندرونیه است یعنی شیران بیشه سومین این تار... کتابی که در باب صحابه نوشته شده یعنی تاریخ خاصه، به نام کتابی است که از شهاب الدین احمد ابن حجر اسقلانی متوفای 850 همون که اهل سنت میگن امیرالمؤمنین فلحدیث کتابی داره به نام الاسابه الاسابه اینو ببینید اینا تاریخ در حقیقت ولی تاریخ افراد خاص صحابه بخاری دو تا کتاب در تاریخ داره تاریخ الکبیر و صغیر خ... در باب صحابه و تابعین گاهی تاریخ در باب یک واقعه خاصه آقا ما یک تیفی از کتابها داریم در باب مقتل الحسین علیه السلام که اولیش از ابو مخنفه متوفای حدود 150 و اشرفت شریف با سادات شما که 157 ببینید های زیادی درباره یک واقعه با عنوان مقتل الحسین الان مرحوم مقرم مثلا کتابی داره باز با همین عنوان مقتل الحسین علیه السلام یا مثلا نظر ابن مزاحم منقری که رو بیبریم کتابی داره وقعت و سفین این فقط در باری سفین مرحوم شیخ مفید کتابی داره واقعه جمل جمل فقط در باری جمل این دیگه چیز دیگه کار نداره تاریخ هم گاهی دوستان عزیز یا مثلا کتابای زیادی داریم در باب غزوات پیغمبر پس ببینید تاریخ گاهی عمومی است گاهی درباره اشخاص خاصه گاهی درباره واقعه خاصه گاهی هم درباره مثلا تاد میکنیم که چیزهای دیگره. اینو میگن تاریخ به بود. و اما بعد از این مدخل که سه چهار تا نقطه بود سه چهار تا نقطه بود من یک فهرستی از کتابهای علمای اهل سنت در باب تاریخ پیامبر و اسلام تاریخ اسلام اولین کتابی که معروف در باب تاریخ اسلام نوشته شد از یک عالم بزرگ به نام ابن اسحاق بود از شاگردان امام باقر و صادق علیه مسلم در سال 150 فوت کرده یعنی دو سال بعد از امام صادق همون سالی که زرارت ابن عیانم فوت کرد محمد ابن مسلم هم فوت کرد. سال 150 سال ای بود برای اصحاب ائمه ابن اسحاق بعد یک آقایی به نام ابن هشام آمد از اهل سنت این کتاب را شرح نویش. ما الان متن کتاب ابن اسحاق جدا در دست ما نیست. متن ابن اسحاق ممزوج در ابن هشامه. ابن هشام آمده لغت را توضیح داده، شعرا را توضیح داده، کلمات را توضیح داده، اصطلاحات را توضیح داده، و خود به خود چون بعضی جاها ممکنه حذف کرده، بعضی جاها ممکنه اضافه کرده. لذا این کتاب معروف به سیره ابن هشام، نه به سیره ابن ساق، به سیره ابن هشام. خیلی از کتابهایی که در تاریخ پیغمبرم نوشته شده، با عنوان سیره معروفه. اصلا کل تاریخ پیامبر را تعریف به سیر میکنن سیرها تاریخ. چون روش را داره نشون میده زندگی را داره نشون میده بعد از این دو بزرگوار واقدی. واقدی در دویست و هفت فوت کرده. بحثه که آیا واقدی شیعه یا سنیه. حال همدم آرون رشید بود. ابن الندیم می نویسه کان یتشیع. ببینید نمی نویسه حوشیتون ما در باب اصطلاحات قرن دوم و سوم در چند تا لفظ داریم در علم رجال مثلا یک لفظی داریم میگن رافزیون اهل سنت رافزی رو به کسی میگن که امامت امیر را رو پذیرفته و خلفا رو لعن میکنه ها پرد میکنه این میگن رافزی یک کلمه دارن شیعیون این دو شیعیون یعنی ای شیعیه دیگه حالا چطور آدمیت نمی سومین اصطلاحی که به کار میبرن شیعیون جلد یعنی شیعی داق. شیعی داق مثلا زهبی می نویسم او صفحه اول میزان و فکر میکنم میگه ابان ابن تغلب دومین راوی تو کتابش همینه میگه صدوقون ثقتون و ایو ثقتین یا در باره زرارت ابن عیان. همین تعبیر داره. الا انهو شیعی یون جلد. همچی تعبیری حالا. حالا دقیقا باید ببینیم درباره کدوم را این تعبیر آمده. به هر حال واقعی کتابی داره به نام مغازی. مغازی. مغازی جمع مخزا مخزا به معنی غزبه. جنگ هایی که پیغمبر اکرم خودش حاضر می بوده می غزبه. لذا غزوات و نبی کتاب داریم جنگ هایی که پیغمبر حاضر نبوده میگفتن سریه سراین نبی تو تاریخ اصطلاح داریم سراین نبی غزوه النبی غزوات النبی آقایون در باب اینکه واقعی گفتم آیا شیعه هست یا نه؟ پس ببینید یک اصطلاح چارو می داریم در کتاب اهل سنت یا با باب تفوق باب تفعیل رو وقتی به کار یا میگن متشیعون یا تشیع یعنی این هواخواه امیر الممنینه. اما اینکه که امیر و علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به عنوان امام قبول داشته باشه نه اهل کوفه اون قالبشون یا تشیع بودن یا اون بودن یعنی هواخاه های بودند. بودن خیلی وقتا اینا به امامت امیرالمومنین اعتقادی نداشتن ها امیرالمومن را خلیفه میدونستن لذا اطاعت میکردن لذا خیلی وقتا حضرت امیر هم در بضوی اینا و احکام هیچ وقت دخالت نمیکرد چیزی تذکر نمیداد نگاه کنید ابن ندیم درباره واقعی مطلبی نقل میکنه ابن ندیم فهرست نویسه که مرحوم نجاشی مرحوم شیخ توصی ازش خیلی استفاده کرده خود ابن ندیم در سال عرصه شریف سی سد و اندی فوت کرده در 297 متولد شده و در 385 فوت کرده معاصر مفید بوده در بغداد معاصر شیخ مفید یک جمله ای درباره امیر داره که خیلی جمله تکیه ها به من فریده ای جمله را باید دوستان طلبه ما دوستان فضلای ما حفظ داشته باشند میگه که کان ی تشیع ابن الندیم و هول لذی رویه و هول لذی روا میگه همین واقدی است که روایت میکنه چی رو؟ چی را؟ روایت میکنه؟ ان علی من معجزات نبی آقا وجود امیرالمومنین از معجزات پیغمبره. یعنی اگر پیغمبر معجزه غیر از قرآن بگیم آقا نشون نمیده آقا امیرالمومنین. و این پی... امیر امیرالمومنین معجزه پیغمبره کل عصا موسی و احیاء الموتالی سب نمکیم. جمله جالبی. خیلی تکیه. خب ببینید. بعد از واقدی واقدی یک شاگردی داشت به نام ابن سعد. متوفای دویست خود واقدی در دویست و هفت فوت کرده. این ابن سعد الان طبقات ابن سعد خیلی کتاب مهمی ها. جایگاه ویژه‌ای داره ها. حدود چند جلده، فشت جلده، دار و سادر بیروت مصر منتشر کرده؟ ابن سعد در کتاب ها می نویسن الکاتب, الکاتب, الکاتب الواقعی نگاه کنید کاتب ما دو اصطلاح داریم در اصطلاحات قدیم یک الکاتب شغل دیوانی بوده یعنی کسی که نامه سلطان والی دیگران را با خط خوش می بعد می دادن به والی که اون مهر میزده اینو میگن کاتب این کاتب اونجا این معنا نیسا این کاتب یعنی شاگردی که درسهای استاد رو کلمه به کلمه می نویسه کاتب الواقدی یعنی حرفای استاد رو می‌نویش و به کتاب تبدیل می کرد ابن سعد، ابو عبدالله محمد ابن سعد زهری کاتب الواقدی کتابش با عنوان طبقات و و تابعین در دویست و سی گفتیم فوت کرد بعد دیگه کتاب مهمی که در بین احل سنت معروفه در تاریخ کتاب تاریخ و الامم والملوک از محمد ابن جریر تبری متوفای 311 اولا فقیه بوده بعد مفسر بوده بعد مبرست بوده یعنی در علوم دیگر هم احاطه داشته در تفسیر کتابی در سی جلد نوشت گفتن آقا کی میخواست سی جلد مطالعه کنه در پونزده جلدش خلاصه کرد الان جامع بیانش در 15 جلد چاپ شده گفتن آقا 15 جلدم کسی حوصله نداره گفت نه من دیگه کمتر از این کتابی داره در فقه به نام اختلاف الفقها اولین کتابی که در تاریخ در فقه اختلاف بین فقهای اهل سنت وجود داره همین اختلاف الفقهای محمد ابن جریر تبریزی و در این کتاب وقتی وارد بغداد شد گفتن آقا فتاوی احمد ابن هنبر را چرا نیاوردی فقیه ما چون بغداد همه هنابله بودند گفت من احمد ابن هنبر را فقیه نمیدونم لذا مردم عوام الناس هم که دیگه هوچگری را زود رام اندازن او را خانه نشین کردند او قصد سنگ زدن به خانهش و در خانهش که دخ کرد و مرد در خانه و نزاشتن براش تشیج ای بشه به در همون خانه خودش در بغداد دفنش کرد. تابستونها در مازندران می بود یه و قشلاق داشت. زمستونها میرفت به بغداد. ببینید تاریخ الامم و الملوک. این تبری در تفسیر جامع البیان و تفسیر و تاریخ تاریخ الامم و الملوک از همه مورخین بیشتر مطالب خرافاتی نادرست. و غیر صحیح آورد آورده چی برای که آدم لینی بود در نقل تاریخ متساهل بود نیگاهکنید مثلا ذهبی علمای رجال را دو سه دسته میکنه میگه بعضی متشددند بعضی معتدلن بعضی متساهلن نجاشی هم در کتاب رجال خودش داره ها دربارهی برقی همیره میگه یروی عن الذعفا یعتمد المراسی لا یبالی عن من اخص هر چیزی رو نقل میکنه. سند براش مهم نیست. از هر کسی روایت میکنه. تبری هم همی حالت رو داشت. خیلی از مسائل اسرائیلیات که وارد تفسیر و وارد تاریخ شده از طریق همین محمد ابن جریر تبری بوده. و تاریخ را او با سند میاره ها. چون تاریخ در نزد علمای قدیم وزان حدیث رو داشته به همین دلیل به مورق اخباری میگن ها ما در اص... اولین اصطلاحی که از کلمه اخباری داریم اجلی در کتاب رجال نجاشی نگاه کنید کان اخباری البسره اخباری البسره ای اخباری بسره بود یعنی چه؟ یعنی مورخ یعنی محدث باری در او زمان یعنی گزاره های تاریخی رو به صورت خبر نقل میکرد اخباری دوم که به کار رفت اصطلاح دوم اصطلاحی بود که علامه هلی به کار برد در مختلف شیعه آمد قدمای ما را به دو دسته تقسیم کرد مجتهدین مثل حسن ابن نبیقیل عمانی مثل محمد ابن جنید اسکافی متوفای سی سده و دسته دوم اخباریان مثل صدوق رحم مثل برقی مثل کرینی، اینا نگاه کنید اصطلاح سوم که الان ما تو ذهنمون هست همون اخباری است که در دوره مولا امین استرابادی تأسیس شد و را افتاد اینا در حقیقت فرق میکنن با او دو گروه قبل اینا همون آدمای تنده به حال تندی که آلم هم هستن و این چه که ما در حوزه های ما شایع از اخباری هایی مثل مثلا مولا امین استرابادی و مرحوم مثلا شیخ یوسف بهرانی یک بخشش علمی نیست آقایون هزارات اساتید رسائل دقت کنید ها به مسادر خودشون اگر مراجعه کنید مولا امین استرابادی رسالت دو تا رسالت داره در تهارت خمر کدوم فقیه حصولی همچی فتواهی میده سیخ یوسف بحرانی بیشترین استشهادات و اصولی رو در کتاب الهدایق و داره. کدوم فقیه اصولی قد استشهاد کرده؟ اصلا شما جواهر الکلام رو بخونید؟ خیال مکنید صاحب جواهر الکلام اصلا اصول بلد نیست. این بقیدی من یک هوچیگری بود که در اون تاریخ نیست. را افتاد برای اینکه اخباریگری شکست بخوره. این اخباریگری های تندرو پست بی اونا اما افراد بزرگ شد آقا اللامی مجلسی هم میگن اخباریه شیخ راملی هم میگن اخباریه اینا که پیشانی مذهب ما هستن میبینید تبری آقایون بعد از تبری در قرن ششم عبدالرحمن ابن جوزی هست متوفای 597 کتابی داره به نام المنتظم بعد از او ابن اسیر جزری این در اوساط علمی شیعه دو تا کتاب تاریخ اهل سنت خیلی جا داره که مدام محققین ما و ما بزرگان ما استناد میکنن یکی تاریخ و الامم و الملوک طبری و دومی الکامل کامل ابن اسیر. محمد ابن اثیر الجزری متوفای 636 توجه داشته باشید یکی از علمای شام به نام اسماعیل ابن عمر قرشی متوفای 774 کتابی داره به نام البدایه و نهایه. شمس الدین محمد ذهبی متوفای 748 تاریخ ولی اسلام داره و دوید جلده ولی آقایون در مرحله اول در مراجعات بزرگان ما تاریخ تبریس به لحاظ قدمتش به لحاظ آلم بودنش به لحاظ گستردگیش و در مرحله دوم کامل ابن اسیر و در مرحله سوم دا ابن کامل ابن ثیر و در مرحله سوم داه و ابن کثیر اما کتابایی مثل منتظم ابن جوزی و نمیدونم تاریخ اسم این دیگه خیلی مورد مراجعه نیست ولی خب بر توجه داره خب این یک گزارشی من از کتاب تاریخی اهل سنت. حالا برای که یک تنوعی هم حاصل بشه و در حقیقت باز بتونیم به بخش بعدی که کتابشناسی تاریخی شیعه هست وارد بشیم من اجازه بدید اینجا خدمتتون بگم تاریخ را ما چه معنا کردیم آقایون؟ تعریف تاریخ این بود میگن تاریخ عبارت از گزاره های وقای روزگار و بلاد است. اصل تاریخ بدون اینکه کسی بگه آقا ای دروغه بدون اینکه کسی بگه ای راسته. الان شما متن کتاب قل امم را که میرید مطالعه میکنید دقیقا همینه. داره گزارش میده. مثلا بیشترین گزارشاتی که و نقلی که تبری از مقتل ابی مخلف که قدیمیترین مقتل امام حسین علیه السلام هست ما از طریق تبری داریم. تغییر تبری. نباکه فقط گزارش میده. آقای حسین فلان روز حرکت کرد، همچی کسی آمد، او برخورد کرد، آقا عبدالله نباس چی گفت، او یکی دیگه چی گفت، او یکی دیگه چی گفت، رو داریم ما. تاریخ به ما هوت تاریخ گزارشه، اما در صد ساله اخیر، وقتی که اوساط علمی دقیقتری پیدا شد، مخصوصا دانشمندان محقق و مدققی پیدا شد، اینا آمدن به بحث گزاره‌ها تنها اکتفا نکردن. آمدن تاریخ را در حقیقت زیر رو کردند. مثلا گفتن ممکنی حرف درست نباشه ممکن ممکنه گفتن این حرف نه. این با اسمش ای با ای را اسمشو گذاشتن تحلیل تاریخ. تحلیل تاریخ. به عبارت دیگر آمدن نقد تاریخ. یعنی اینا سرسپرده کتابهای تاریخی نبودن. اینها وقتی به کتاب تاریخی نگاه می‌کنند با چشم بررسی نگاه می‌کنند، با چشم بررسی مثلا فرض میکنیم من یک نمونه مثال بزنم الان شما ملاحظه بفرمید جریان نظر جناب عبدالمطلب را که آقا اگر خداوند به او ده به سر بدهد یکی را ضبح خواهد کرد خب این جریان این الان یک واقعه است که در کتاب تاریخی آمده همشیعه نقل کرده هم عد دوره های اخیر هیچ کسی متعرضی جریان نشد که آیا درسته یا درست نیست اما از صد سال اخیر پنجاشت سال اخیر علما بعضی آمنان بررسیش کردن مثلا جعفر مرتزال العاملی علام جعفر مرتزال العاملی میگه نه ما هم چیز قبول ندارم بعید عبدالمتلبی که کاری تلو معصومان بوده عبدالمتلبی که در اصل خودش واسطه نبوت بوده بیاد همچی نظری بکنه مگر یک چیزی میشه نظر بکنه که از گیته فقه خارج باشه به در ادیان گذشته این طوری بوده مثل مثلا داستان ابراهیم از یا اومدن توی. ولی شما نگاه کنید آیتو لالوزما آقای جعفر سبحانی حفظه الله تعالی که فرمودن من بیشترین کار روی کتابی که کردم روی کتاب. فروغ ابدیت بوده. تاریخ اسلام. یالله. تاریخ اسلام. تاریخ پیامبر به نام فروغ ابدیت فرمودن چار پنج سال من مدام وقتم رو گذاشتم روید. نگاه کنید. یک فقیه یک محقق. یک اصولی. یک مجتهد الان آمده به میدان تاریخ. نه یک کسی که مثلا چهار سال در دانشگاه دو سال خونده بعد یک مدرک هم گرفته. آقا رشته شما چیه؟ تاریخ حالا نه ترجمه کتاب های عربی رو می‌تونه ترجمه کنه. نه اصلا کتاب شناس تاریخه. نه اصلا می‌تونه مراجعه کنه هرچی استفاده میکنه. از همین ترجمه ها هم باید که یک مدرکی بهش دادن. نگاه کنید. ببینید. آیت ما آی جعفر صبحانی از کناری قضیه ساکت رد میشه. یکی میاد نقد میکنه. یکی از کنارش رد میشه. مرحوم ها استاد دکتر سید جعفر شهیدی رحمت الله علیه که من دوستان را توصیه میکنم کتابهاییشون را بخوانید و مکررم بخوانید. مکرر توصیه میکنم میگم بخوانید چون واقعا دقیقه ایشون در تاریخ مثلا در تاریخ اسلام تاریخ تحلیلی اسلام شما فقط همون جریان قصه فرزدق را ببینید ایشون چقدر دقیق بررسی میکنه به عنوان مثلا همین نظر رو ببینید چطور بررسی میکنه و و و افسانه قرانیق را چطور بررسی میکنه یا کتابی داره درباره حضرت زهره علیه السلام. کتابی داره درباره زین العابدین علیه سلام نکته دومی که میخوام بگم اینه که کتابهای آقای دکتر سید شهیدی نصرش ادبیات سره ادبیات سره یعنی شما وقتی کتاب را پنج بار مطالعه کنید جملههای های زیبا و کلمات زیبا تو ذهنتون خود به خود جا میگیره وقتی سخنرانی میکنید بر زبانتون اتوماتیکی جاری میشه دیگه از کلمات نامعنوس فلان استفاده نمیکنید ببینید تاریخ تحلیلی اسلامیشون داره پس پس اونچه که از قدیم بود گزارش های تاریخی بود و کتاب های تاریخی پیکرهشون همش همینه کتابهای های فربه تاریخی هرچی شما پرساز و برگتر را نگاه کنید فقط گزارشه اما در 60-70 سال اخیر و 100 سال اخیر مثلا تاریخ تحلیلی اسلام عباس حسن شما نگاه کنید مسائل رو تحلیلی بررسی میکنه چقدر دقیق چقدر دقیق مثلا ابراهیم حسن ابراهیم من اسمشون رشته گفتم حالا این مطلب رو نمیدونم مالی ایشون بود الان من اصل کتابخانه که رفتم نگاه کردم که یک دوباره مطالب ذهنم بیاد و به... یاد کنم بعضی نکته ها را نتونستم آدرسش پیدا کنم ولی ببین این تحلیل تاریخ یعنی این که مثلا شما ش... یک واقعی هست که الان بین ماها حتی ما منبری ها بالای منبر مکرر میگیم میگیم آقا مردم اندلس مردمی بودن که اینا خیلی آدمای شهوتران شهوتران رفتن توی ابن و اندلس رو از دست دادن. مالون همه همین رو بگیم. این محقق بررسی کرده. میگه نه ای درست نیست. و دقیقا هم درست آقا. مردم اندلس من تاریخشون رو خیلی خوندم. خب اینا توجه داشته باشید. کتاب الجهاد شهیدستانی در شرح الامرم اگر نگاه کنید یک مطلبی رو از اهل سنت میاره که وقتی میگه فقها فتوای به جهاد میدن خب فتوای به جهاد هر چند سال بعضی فقهای های اهل سنت گفتن هر ده سال بعضی گفتن هر پنز شکی به ارسلان یک, یک رمان نویس اهل سنت یک جوهشگر و محقق نیست یک رماننویس نویس اهل سنته و هم بیروتی لبنانی ایشون یک کتابی رو آمده کرده تیکه های برجسته تاریخ. استاد علی دوانی رحمت الله علی آمده ترجمه کرده ما منبری ها می کتاب رو مخانیم. بخش او تیکه اندولوس را گفته نگاه کنید. اندولوسی ها به شهوترانی پرداختن و از دست دادن. خب ما باور مکنیم. همونطور که در کتاب, کتاب حسن سباه نوشته قلعه علموت. اون آقا می نویسه تا زمانی که قرامته اسماعیلی نماز صبح داشتن، ورزش داشتن، شمشیربازی داشتن، سرگاه نت سال مقال ها نتونستن قلعه را تسلیم بشن، فتح کنن، ولی وقتی که صبحا خوابیدن، لط، پار، خلاصه تنبل شدن، از دست رفت. اینه این، نگاه کنید، حالا، این ترجمه آمده تو دست و پا افتاده، حتی بزرگاه نقل میکنن، آو این بعضی از مبرخین همدانی رو بررسی کردن گفتن این اولین بار به وسیله یک پایان نویس یعنی یک آقای فوق لیسانس در مصری حرف گفته شد بدون اینکه کسی مراجعه کنه آقای شکی برسلان آمد از اونجا نقل کرد و نوشت تو کتابش بقیه هم باز بدون استاد علی دیوانی هم بدون اینکه به مصادر مراجعه کنه راه ما ترجمه کرد بر زبان ها افتاد. ما آمدیم هزاران مسلمان اندلوسی رو کردیم که اینا آدمای فلان فلان بوده آقایون اون تاریخ اندولست اگر بخوانید اینا تا اولا تا قرن هشتم دینشون رو حفظ داره که نظامی هر روز جمعه درها را با می گفتن آقا درهای منزل باید باز باشه شما یک شنبه باید بیای به کلیسا اگر می دیدن کسی شسته هست می تو قسل کردی تو قسل کردی پسران مس... مس... آن با دختران مسیحی دختران مس... مسلمان با پسران مسیحی ازدواج کنن بعدم اینا گرفتار فتاوی فقهای مالکی شده بودند. فقهای های مالکی آقایون هر هشت سال ده سال 5 سال فتوا می به جهاد اند اون اسپانیولی ها و اندولوسی ها در کوهستان ها مستقر بودند. اینا در بیابان ها هر بار حمله می کردن شکست بخودن آخرش آقایون 500 هزار اینا به عنوان برده بردن تو کشتی ها فروختن استفتا کردن از علمای شمال مصر شمال افریقا که آقا ما چکار کنیم اددهی جواب دادن شما تقیه کنید و خودتون رو حفظ کنید جانتون رو اددهی هم گفتن ما نمیدونیم چکار کنیم خودتون هر کار میخوای بکن نگاه کنید تحلیل تاریخ همیه نقل نکردم یک نامه ای از مردم یهودی قیبر که خداوند متعال سحیون را و اسرائیل را نابود کنه و مردم مسلمان فلسطین را نجات بده و بر عظمت جمهوری اسلامی ایران بیفزاید که این چنین اقتدار خودش را نشون داد در این روزها آقایون نگاه کنید اون نامه را من از مقدمه کتاب الوافی اشاره نکردم بل الوفیات آقای محمد بله گفت آقا این چار قرن خراج نمیدادند بعد ابو بکر بغدادی با اصحابش که اهل تاریخ بودن آمد کشف کرد که نامه جعلیه اصن اینا در او زمان نبودن که اینا ای کشیده شده نگاه کنید پس ما تاریخ صرف داریم یعنی گزاره ها. ما تاریخ تحلیلی داریم که هر ای رو میاد بررسی میکنه در میکنه یعنی در حقیقت عینک دودی میزنه عینک یک تعبیر یکی از علما داره ها میگه میگه مثلا تا او تعبیرش اینه که به همه به چشم دشمن من نمیخوام تعبیرش را بگم درسته یا درست نیست میگه به همه به چشم دشمن نگاه کن من هر مطلبی رو که به رفاقام گایی میگم آقای این طلبه ها ما کار ما خیلی چیزی برای ما خبر آوردن به چشم این که آیا ممکنه درست نباشه ممکنه از... از... نادرست باشه شاید شاید با چند واسطه ای مطلب که از دهند من در میاد از انگلیسه ولی واسطه خورده من شدم تریبون انگلیس نگاه کنید بخش سومی که در تاریخ پدید آمد تا فلسفه تاریخه این فلسفه تاریخ دیگه خیلی پیشینه نداره در فارسی میگن معروفه میگن اولین کسی که در باب فلسفه تاریخ کتاب نوشت مرحوم استاد شهید متحریه بود فلسفه تاریخ اصلا یک کتابی داره فلسفی تاریخ معنیش اینه که ما بیم پیش زمینه یک وقت را بررسی کنیم. نگاه کنید ما همش داریم از این طرف به تاریخ نگاه می کنیم. داریم نقل می کنیم و گوش می کنیم. حالا بیم نه پیش زمینه‌ها را. ولی کسی که در باب آشورا وارد فلسفه ی آشورا شد مرحومه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد ابراهیم آیتی بود. که ده شب در رادیو ایران. خب وقتی که مرحوم آقای راشد شما یا تو نیست آقای راشد قبل از انقلاب سخنرانی میکرد در رادیو ما یادمون میاد شب جمعه که میشد میدویدیم چون که رادیو نمی بود تلویزیونی نمی بود من یادم میاد اون محله شکروی بیرجند ما که الان جوادیه شده یک تلویزیون سیاه‌سفیدی بود یا زهر تو خیابون زادانی که ما اخوی ما اونجا مغازه داشت یک کافه ای بود به نام کافه حاجی تخ‌پاش خدا رحمتش کنه خب 2300 نفر جمع میشدن این تلویزیون داشت که چی نگاه کنن که نگاه کنن یک نیم ساعت فیلم مرد 6 میلیون دلاری به نیم ساعتم تو تارزان را برای مرحوم آقای راشد که شب و جمعه سخنرانی میکرد بودو مردم رفتن ها یعنی برنه. مرحوم آقای راشد رحمت الله عره. یک وقتی رفته بودن برای م... علاجشون به خارج بعد گفته بود رادیو که آقا کیر ما بیاریم که در دهه آشورا ایشون فرموده بود ابراهیم آیتی ها مرحومه ابراهیم آیتی که در سال 43 ایشون تصادف کرد و کشته شد شهید متحریه همون هماسی و سینی نگاه کنید چقدر از ایشون به یاد میکنه مرحوم دکتر ابراهیم آیتی میفرموده من در تاریخ اسلام در ایران مثل من کسی نیست در جهان اسلام ببخشید، در تاریخ اسلام، در جهان اسلام مثل من کسی نیست، یک صد ساله اول اسلام، و در تاریخ اعلام عرب در ایران مثل من کسی نیست، همچی آدمی بوده، مرموم شید از ازشون به کتابخانه تعبیر میکنه، تاریخ تاریخیشون آمد در بابش شهادت عبدالله حسین پیش زمینه ها را آقا چه چیزهایی باعث شد که امام حسین قیام کرد این تاریخ نیست این ای تحلیل تاریخ هم نیست ای فلسفه تاریخه چرا؟ اونایی که دنبال چرایی میرن در حقیقت دنبال فلسفه تاریخ هستن فلسفه تاریخ که الان این جریان در حقیقت خیلی مورد توجه است. خب دوستان عزیز از کتابهای تاریخی تحلیلی بسیار ارزشمندی که در دوره ما یعنی در پنجاه ساله اخیر نوشته شده و دوستان میتونن به عنوان مدرک و منبع مراجعه کنن یکی کتاب از من سیرت النبی الاعظم جعفر مرتضا العاملی البته ما معناش این نیست که در واقع به هر حال آقا ممکنه ایشون اشتباه نداشته باشه ما که اینطوری نمیخوام بگیم ولی کتابی است که واقعا زحمت کشیده ایشون زحمت کشیده یکی از دوستان تعریف میکرد میگفت در روزی که ایامی که ایشون مریض بود در لبنان و دیگه فوت کرد در همون مرض رفتم دیدم دراس کشیده کتاب را همینطور بالا داره و اونقدری کتاب را رو روی سینش درباره مرحوم علامه سید محسن امین جبل آمیلی هم ام این رو نقب میکنن که سینه شون زخم شده حالت اینطوری داره و دیگری هم از استاد بزرگ و با عظمت تاریخ جناب استاد محمد هادی الیوسفی که در قم هستن کتابشون رو مجمع فکر الاسلامی چاپ کرده به نام موسوعت و تاریخ الاسلامی خب من اینجا بحثم را دیگه تموم میکنم چون میترسم که اگر باز وارد کتاب شناسی شیعه بشم شما ممکنه خس وارد بشیم یا نه وقت داریم خیلی خب که ممکنه مطلب منم ضایع بشه در حقیقت و من هیچ وقت کالای خودم را به ثمن بخش نمیفروشم به همین مقدار می میکنیم باز انشالله اگر جلسه ای بود یا هر وقت هر وقت باز در اونجا دنباله بحث را ادامه میدیم در حقیقت. ما میتونیم در باب کتاب های تاریخ شیعه هم بررسی کنیم. بعد باز در یک جلسه منبع شناسی تاریخ عبدالله الحسین که برای ما طلبه ها خیلی مهمه و من سوسن آقایون به شدت کتاب های دوری قاجار داره چاپ میشه. و من نمیدونم این یک واقعا خدمت به فرهنگ شیعه یا پشت سر این جریانات نکته هست کتاب که در تاریخ حالا در همون جلسی خودش خواهیم گفت و صلی الله و محمد حمد و سلامت باشید فلسفه تاریخ که فرمودید طبعا بعد از اینه که تحلیل تاریخی بشه و اثبات بشه برداید. بله. نظر رد. بله. بله. دقیقاً همینطوری. و الا فلسفه تاریخ که نمیتونه معیار برای تشخیص صحت گزارید. بله. بله، بله، بله. بله. نه، در فلسفه تاریخ در حقیقت پژوهشگر به دنبال چون و است. یعنی چرای واقع اتفاق افتاد؟ که کأنو واقع را مفروقاً ان میدونه. می میدونه در حقیقت ببینید مثلا فرض یه وقت هست مثلا فرض ما در فقه داریم از اول درباره وسیعت بحث میکنیم امروز تو شورا یک پایان نامی بودم اینطور گفتم یه وقت میایم بحث میکنیم که آقا وسیعت به فروش به فروش اعضا پس ما وصیت رو مفروغانه میگیریم دیگه آقا او هیچ مشکلی نداره از نظر فقها این عمل کلام در این است که آیا وصیت به فروش اعضا بعد از فوت صحیح آن املا و چرا مثلا صحیح هست چرا صحیح نیست در این فلسفه تاریخ بیشتر به بی این بحثان برد یعنی فلسفه تاریخ رو به عنوان یک معیاری برای صحت و صحب فلسفه تاریخ در صدد مئ... صحیح و گتلانش نیست فلسفه امید. تاریخ میاد یک واقعی رو مفروغ ان میگیره حالا در نظر ما مثلا جریان شهادت عبدالله الحسین علیه السلام در نظر مثلا فرد بکنیم فلان مورخ آقا سلاه الدین ایوبی جنگ های سلیبی دویس ساله جنگ های سلیبی را خب مفروغان ان میگیره درست میاد در الان آقا جنگ قزه را یک خبرنگار میاد گزارش میده می هر روز ای را میگه مورخ یکی میاد میگه چکار شد که اینا اینطوری انفجاری صورت گرفت چکار شد چه مثلا سختی هایی بر مردم قزده وارد شد چه مشکلاتی که اینا ای طور آمدن منفجر شدند و در مقابل اسرائیل دادن این رو میگیم فلسفی دارم یعنی فلسفه فلسفه تاریخ که نوشته بشه بعد این موجب بشه که بسیاری از بزاره های تاریخی اون واقعی زیر سوال بره خب فلسفه سازگی میگم این که حتما مفروغون باشه بعد فلسفه خود. تحقیقی در فلسفه بله، تاریخ موجود به سمت بله، همین صحبه هست دیگه همین طوری هم هست لذا مثلا فرد میکنیم ما در تاریخ با روسین علیه السلام با این نظر پیش میریم میگیم آقا اولین اصلی که ما در تاریخ میخوام اینجا درباره باره امام حسین تاریخ امام حسین اسمت امامه ما وقتی که اسمت امام را تابلوی خودمون قرار دادیم ممکنه خیلی از گزارهای تاریخی رو رد کنیم میگیم با اینا با, با شعنش و اون امام نمیسازه؟ کنار بذاریمش. همینطوری هم هست. فرمایش شما دقیقا درسته. خواهی شما. بله بله. بله. محدث گفته میشه راوی راوی بیشتر راوی کنید ما پنج تا اصطلاح داریم در 5 تا اصطلاح داریم مثلا کسانی که نوعا نقل روایت میکردن میگفتن راوی کسانی که یک مقدار بیشتر با امام معنوس بودن شاگرد داشتن کتاب مینوشتن میگفتن محدث میگفتن محدث کسانی که د... یا شیخ الروایه شیخ روایه. اینا شیخ الروایه تعبیر میکن محدث با یک مقداری بالاتر شیخ و روایه محدث بعد دیگه مثلا باز کسی که جمع بین روایت و درایت میکرده مفید بوده من جمع بین درایت و روایه سموه بالمفید چرا مثلا مازنی شیخ مفید را مفید انما لقب به مفید این نه اینکه آقا مفید یک اصطلاح میگن آقا مثلا چنین و چنان ما دیگه این یک اصطلاح رایج قرن پنجم در بغداد بوده ها اگر هر اصطلاحی را ما در عصر خودش بررسی کنیم هر دانشی تخصص مخاطبات بریم به اون زمان دیگه به او زمان شما که مثلا قرن پنجم بغداد را با فکر الان بررسی کنی او زمان در اون زمان محدث اینا راوی شیخ اجازه شیخ حدیث بعد باز کسی که من جمع بین روا یا تودرای المفید المفید به همین جهت هم شیخ مفید ملقب به مفید شده نه جهت دیگر چون معلوم نیست که مثلا امام زمان علیه اصلاحات کاش همون اصلاح اول اخباری آیا؟ یا نوعی مثلا نگوهش درش قابیده بوده نه, یعنی نه. اخباری یک استعلام مرحوم شهیدسانی در ارای داره میگه در حقیقت خبر حدیث روایت و اثر به یک معنایه بعد میگه اصطلاح اخباری در اصطلاح قدما ما بر مورخ اطلاق میشده مثالم زدم از رجال نجاشی در کلمه اجلی نگاه کنید و کان اخباری و کان اخباری البصره الزاما نفرین نپوهشی درش نخواسته نه نه هیچ چیزی بلد. این نکوهشی که پیدا شد مال این اخباری های دوره اخیر بود در حقیقت چون میدونید اونام آدمایی مثل ملا امین سرابادی و مرحوم شیخ بهرانی آدمای معتدل فلان ولی یک تندروهایی در این لایه بودند خب که اینا کتاب کتابای اصولی را با لته برمه داشتن میگفتن اینا نجسه که اینام اسبابی داره که چرا اینطوری شدن یا کتابای اصولی رو مثلا کتابای رو برای خود شیخ یوسف این ها رو مزمت که تندروهای در آن. نه برای شیخ یوسف بران این رو ترت میکنه هست. از خودی. بلهله بله بله بله بله بله بله نگاه کنید میگم در باب اخباریگری من یک بحثای زیادی داشتم که فلسفه پیدایش اخباریگری چی بوده مثلا چرا اخباریگری پیدا شد هر کدوم اومدن یک دلیلی عمردن سه چهار تا دلیل اون من نظرم اینه که به عقیده من بعضی سختگیریهای مجتهدان ما باعث شد که طرف مقابل تفرید کنه مثلا شما نگاه کنید مرحوم شهید شما برید ت... کتاب لمعه و کتاب ر... مسال کل افهان و کتاب روز الجنان را رو بخانی قالبن احادیسی را به هر بهانی کنار میزنه مثلا مزمرات را کنار میزنه می را کنار میزنه رابیوی واقفی رو کنار میزنه رابیوی مثلا فتحی ابو اینا همه را خب دیگه تایش چی مونه مثلا شیخ سید محمد موسوی عاملی به صحیح اعلائی عمل میکنه صحیح علایی میگه باید سلسله سندش را دو رجالی تعیید کنه خب چند تا میتونید شما حدیث پیدا کنید که دو رجالی تعیید کنید من او گشتم که ایلی محدود چار پنج تا میتونم پیدا کنم مثلا یکیش در باب خمس همین میگن اگر ان الارز الذی اشتراح از اونجا مرحوم آیت الله فازل میگه این صحیح علاییه. ها یا مثلا از کردم 4 پنج تا مثال پیدا آقا شما صحیح علای عمل کنید که دیگه ف... روایات به علایات الله از آقای زنجانی که مشهد بودن ایشون می‌فرمود اگر ما به نظریه شهید ثانی در باره روایات عمل کنیم به اندازه یک مثلا فرض کنیم که مونه که تو جیبمون بذارید الان شما روش آقای آصفی محسنی خب در روش ایشون چیه روش ایشون همینه دیگه همون روش شهید سانیه. معجم الاحادیس المعتبره هشت جلد شده یعنی بیست و شیش جلد شده هشت جلد آقای محمد باقر بهبودی روششون چیه؟ همینه میان نگاه کنید علمای ما علمای ما از قدیم وقتی که حدیث را از امام باقر علیه السلام گرفتن کتاب محور بودند ائمه علیه هی hey, اینا را توصیه میکردن به نوشتن نوشتن نوشتن اهل سنت حفظ محور بودن یعنی حافظه بر حافظه بر حافظه لذا اونها حافظ داشتن و این حدیث در کتاب شریف کافی که میگه امام صادق میفرماد انکم لن تحفظو حتی تکتبو این لن تحفظو را ش... آقا این چی معنا میکنن یعنی شما حافظ کتاب نمیشید مگر اینکه چیکار کنید مگر اینکه مثلا فرمون بنویسید من میگم این معنای حدیث نیست معنای حدیث آقای بروجردی قاعده کلی به ما میده میگه آقا هر حدیثی رو با در فضای صدور فضای صدور زمان امام باغیر مخصوصا جوری بوده یا امام صادق که اینا حافظ رو انداختن و خیلی افتخار میکردن آقا فلانی چند حدیث فلانی چند هزار فلانی چند چینه امام فرمود آقایون شما حافظ به اصطلاح اهل سنت نمیشید مگر بنویسید اول یعنی هی بنویسید دی بنویسی، هی بنویسی, بنویسی،, بنویسی، لزا ما در حقیقت اخباری به کسی میگیم که سبقه کار رو روایت داره. شما به یک آقا مهندس میگید، به یک آقا دکتر میگید. آقا سبقه ی آقا پزشکیه، سبقه ی آقا فنیه. لذا ای رو میگیم اسمش مهندس، اسمش مثلا مهندس، اسمو آقا در واقع. مرحوم شیخ الرعاملی آقا وسایل و چیه و ایشونه در حقیقت. چون صاحب فتواز منطقه ارز کردیم چون بیشتر با روایات کار میکنه میگیم محدث مرحوم علامه مجلسی چون بیشتر با روایات کار میکرده محدث ولی اینا مثل اون اخباری های بیمزه نیستن دیگه مثلا یک نکته ضعف اخباری که خیلی تعریف تحریف قرآن اختقید نیستن دیگه. مرحوم شیخ خوری، اونا و نبی رو خیلی علم میکنند، چون اخبار داری واد میانند. اینا هیچ وقت اون طوری نیستن، شما همون کتاب شیخ خور رو چقدر داری گرد شونزده بهار رو بخانید، مرحوم علامه مجلسی چیکار کار میکنه؟ لذا ارس میکنم، اینا شون در حقیقت این طوری بوده، و هر کسی یک سبقه کاری خاصی داره در حقیقت، و منطقه علامه مجلسی وش مخصوصا با صدوق خیلی فرق کنم صدوق هم محدثه صدوق هم رئیس المحدثینه بعد به قول یک عبارتی مرحوم صاحب جواهر در کتاب سوم اگر برید نگاه کنید در اونجایی که در باب هلال بحث میکنه میگه مرحوم صدوق من کزانت اسرار الرس، آل رسوله چی تعبیری داره؟ هیلی تعبیر ای میکنه آه. منطقه حالا ایشون جوگیر شده چرا؟ چون روایات زیاد بوده در باب صحبه ائمه و اون زمان اوضا اینطوری بوده که حالا اونم یک تاریخ مفصلی داره که با جای خودش عرض کنیم نه جنابالی دعا بفرمید اگر دستور میدید دعا میکنم اگر مخیر جناب جنابالی دعا کنید نسألو اللهم و ندعوک بسم کالعظیم العظم الهی به دماء شهدائنا و امام زماننا یا الله یا الله پروردگارا به حق محمد آل و محمد قلوب ما را به معارف قرآن و معارف اهل بیت منور بگردان تمام کسان انوات حضرت آیت الله ی اشرفی شارودی و پدر بزرگوارشون و تمام امواتشون اموات جمع حاضر شهدا علما صلهات همه کسانی که روح بلند امام امت نقش در مکتب اهل بیت علیهم السلام داشتند که به دست ما رسیده خدایا همه را غریق رحمت خودت بفرما تمام دعاهای خیر قرانی را دعاهای خیر قرآنی را در حق اهل مجلس ما اموات، شهدا، علما، صلحا، حوزه های علمیه، مراجع تقلید، رهبر معظم انقلاب، نظامی ها، مرزداران اسلامی و خدمتگزاران به مکتب اهل بیت علیهم مخصوصا رهبر معظم انقلاب خدایا همه دعاهای قرآنی را در حق همشون مستجاب بفرما رحم الله من يقرأ <تصفيق> الفاتحة مع الإخلاص والصلوات الله